گرامیان درود بر شما فایل آوایی اول از کتاب برهان علیت برهانی در رد وجود خدای ادیان و روز جزا نوشته نوفخ رو با هم آغاز می کنیم این کتابی با عنوانی غیر منتظره غیر منتظره از این نظر که همیشه برهان علیت و برهانی در اثبات اساسی ترین باور ادیان یعنی باور به وجود خدا فرض می کردیم و حالا نویسنده در نام کتاب ادعا میکنه این برهان ردیه ای بر وجود خدای ادیانه و در زمین وجود روز جزا یعنی دومین باور اصلی بسیاری از ادیان رو هم رد میکنه شاید اگر قبلا کتاب فیزیولوژی ایمان رو از این نویسنده نخونده بودم که اونو براتون صوتی هم کردم و تقدیمتون شد این عنوانو جدی نمیگرفتم و از کنارش میگذشتم اما چون کتاب بی‌نظیر و بدی فیزیولوژی ایمان رو خونده بودم نتونستم به راحتی از این اثر نویسنده بگذرم و کنجکاف شدم ببینم چه چیزی برای گفتن داره و خوندمش حالا با این عقیده که این کتاب حتی ارزش صوتی کردنم داره میخوام شمارم در لذت از خوندنش شریک کنم بریم که شروع کنیم عنوان مقدمه میتوان گفت داستان برهان علیت ترین داستانی است که در تاریخ فلسفه رخ داده است برهانی که می بایست از همان روز نخست به عنوان استدلالی بر علیه وجود خدای ادیان و روز رستاخیز به کار به عنوان برهانی برای اثبات وجود خدای متشخص ادیان به پیروان هر دینی فروخته شد و توهم اقلانی بودن خدای متشخص ادیان را نه تنها بین مردم عادی بلکه حتی در بین فیلسوفان متدین به درجات مختلف ایجاد کرد. بعضی از فیلسوفان متدین تلاش کردند نشان دهند علت العلل تغییر ناپذیر و نامحدود و نازمانمندی که محصول برهان علیت است قابل جمع با خدای انسانوار و پدیدگونه دینشان است و دست به تعویل صفات ذکر شده برای خدایشان زدن تا او را به علت العلل برهان علیت بخورانند. اگرچه این تلاش هرگز از دید منطقی و فلسفی موفق نبود، اما چشم ای پوش دینداران به راحتی تلاش‌های عقیم این متفکران دینی را ارج نهاد و به موفقیت به دست نیامده ایشان نمره قبولی داد از یک طرف هیاهو و تبلیغات دینداران پیرامون اینکه با وجود برهان علیت کوهی محکم از استدلال اقلانی در پشت دین و ایمانشان نشسته و از طرف دیگر وحشت بعضی از روشناندیشان از اینکه مبادا در مسیر فلسفه و اقلانیت پارا از چارچوبهای اعتقادات دینی مردم فراتر بگذارند و تکفیر شوند در کنار بیعلاقگی اکثر مردم نسبت به ورود جدی به مباحث فلسفی همگی موجب شدند که نه تنها جامعه دینداران متوجه تفاوتهای فاهش خدای دینشان با علت العلل نشوند، بلکه مؤمنین قدم بعدی این برهان را که همانا رد وجود روز جزاست بر ندارند و یا اگر برداشتند به طریقی به رفوی این شکاف بزرگ بپردازند و آتشی را که برهان علیت به روز رستاخیز میزند، از چشم خود و دیگران دور نگه دارند در این کتاب بران شدم که خاننده را با قهرمانان داستان همراه کنم تا او یک بار دیگر قدم به قدم برهان علیت را واکاوی نماید و به جای تیه کردن بعضی از مسیرهایی که فلاسفه مسلمان با زدن نعل وارونه پیش پای مؤمنین می مسیری را که طبیعت این برهان در پیش پایش میگذارد طی کند و برونده این برهان را به از قوقاها و حیاهوی مؤمنین با چشم خودش ملاحظه کند پیش از ورود به بحث برهان علیت نقاط ضعف برهان نظم و نگرش مؤمنان به مسئله روح را در محضر قضاوت خاننده قرار داد از آنجایی که بعضی از مفاهیم فلسفه کوهن با ذربین علم فیزیک امروز بی معنی و پوچ به نظر می رسند، تلاش کردم برهان علیت را با مفاهیم امروزی و نگرش امروزی نسبت هستی و ماده بازسازی کنم. برخی از استدلال های آن را با زبان روز بیان کردم و در جاهایی که استدلال های کوهن را سترون و بی دیدم آنها را با استدلال های نوین و امروزی، و با بیانی ساده جایگزین کردم این اصلاحات هیچ تغییری در نتایج برهان علیت ایجاد نکرد و تنها باعث مفهوم شدن آن برای نسل امروزی و رفع نقاط ضعف آن گشت بخش مهمی از مباحثه دو قهرمان داستان به حل مسئله جبر و اختیار و ارتباط مستقیم آن با علیت اختصاص دارد در پایان دوگانگی رویکرد مسلمانان نسبت به قرآن را که هم عنوان معجزه و هم عنوان امر مقدس به آن داده می شود مورد نقد و آسیب شناسی معرفتی قرار دادم و تلاش کردم که در کل مسیر از هر نوع جانبداری هزر نمایم داوری درباره کامیابی خود در این مهم را به خواننده گرامی واگذار می کنم پاییز 1395 نون فخر عنوان دو دوست قدیمی ناباور در راهروی اصلی مدرسه به دنبال اتاق معلم ها میگشت راهرو پر از دانش بود که برای زنگ تفریح بیرون آمده بودند معلم دینی پسرش از او خواسته بود به مدرسه بیاید تا در مورد بعضی رفتارهای پسرش در جریان قرار گیرد ناباور اتاق معلمها را پیدا کرد و وارد شد نگاهی به صورت معلمها انداخت و بلافاصله صورت مؤمن دوست و همکلاسی قدیمیش را شناخت و به طرف او رفت مؤمن هم او را شناخت و به گرمی با هم سلام و احوال پرسی کردند مؤمن از ناباور پرسید برای چه آمده است ناباور جواب داد معلم دینی فرزندم خواسته با من صحبت کند و حالا که تو را می بینم حدس میزنم معلم دینی او خودت باشی. چرا که فامیلی تو را هم به من گفته بود. اما پیشتر فکر نمی کردم که ممکن است صاحب این نام همان دوست قدیمی خودم باشد. حالا بگو ببینم قضیه از چه قرار است؟ چرا مرا به اینجا دعوت کرده ای؟ یا بهتر بهترست بگویم احزار کرده ای؟ مؤمن، راستش پسر تو با درس دینی سر ناسازگاری دارد. همه چیز را مسخره می کند و برای حرف پیامبر و ائمه احترام قائل نیست. چرا که حتی آنها هم چون و چرا می کند. گویا نمی خواهد نمیشود نمی شود کلام معصوم را مورد تن و چون و چرا قرار داد. او حتی با آیه های قرآن هم محترمانه برخورد نمی کند. ناباور یعنی با آیه های قرآن چه کار می کند؟ مومن ایرات هایی می گیرد که نباید بگیرد. چنان درباره آنها حرف میزند که انگار گفته های یک شخص معمولی هستند البته من نمیگویم های قرآن را نباید مورد بررسی قرار داد ولی او چندان احترامی به این آیات نمی‌گذارد ناباور متوجه نمی‌شوم آیا او مسخره می‌کند یا اینکه فقط درباره آنها سوال میپرسد؟ آیا حرفای او نسبت به قرآن تند و زننده است آیا ناسزا می گوید؟ مؤمن نه ناسزا نمیگوید و حرفایش هم زننده نیست اما دو جور می شود درباره قرآن به بحث و چونه چرا پرداخت یکی اینکه سعیمان این باشد بفهمیم منظور آیه قرآن چیست که عبارتی بخوایم بدانیم تفسیر یک آیه چیست و چه چیزی می‌خواهد بگوید دوم اینکه که بخواهیم ثابت کنیم یک آیه اصلا حرف غلطی زده و نعوض و بالله از طرف خدا نیست پسر تو قرآن را از این نظر که آیا اصلا کلام الله هست یا نه مورد تردید قرار می دهد و به این ترتیب حرمت قرآن را پیش همکلاسی هایش هم از بین می برد. نابابر. ببین رفیق من شرایط روزگار را درک می کنم و از پسرم خواهم خواست خودش را سانسور کند و در کلاس هر حرفی را نزند. اما سؤالی از خود تو دارم. مؤمن بپرس؟ ناباور سرش را به گوش مؤمن نزدیک کرد و گفت نمیخواهی دنبال یک شغل شرافتمندانه باشی؟ مؤمن سرش را عقب کشید و به چشمان ناباور خیره شد و گفت تو همیشه عصبی مزاج بودی و حرفت را بی ملاحظه میزدی. چهرت میگوید این بار هم کنترلت را از دست داده ای و حرف دلت را زده ای. خب بگو ببینم دردت چیست. ناباور باز هم سرش را به مومن نزدیک کرد. به صورتی که صدایش به گوش دیگر حضار اتاق نرسد و گفت دروغ گفتن به بچه های بیگناه و شستشوی مغزی آنها در این سن حساس کار ای نیست. مومن که اصلا انتظار این حرف را نداشت سعی کرد خشمش را کنترل کند. بعد از مکس کوتاهی با صدایی آهسته و در حالی که به چشمان ناباور زل زده بود گفت دروغ چرا دروغ قرآن دروغ است یا پیامبر و ائمه دروغند ناباور اینجا جایش نیست که حرف بزنید. اگر موافق باشی یک قرار بگذارین تا سر فرصت در این باره صحبت کنید من حرفهایی با تو دوست قدیمیم دارم مومن اتفاقا حالا دیگر من هم حرفهایی با تو دوست قدیمیم دارم راستش نسبت به تو و آخر و عاقبتت احساس وظیفه میکنه. حالا بگو کی و کجا؟ ناباور. خانه من. همین جمعه چطور است؟ با خانواده ات بیا. مومن. ترجیح میدهم نمکگیر گیر خانواده دانش آموزم نشدن. زیرا شرافتم اجازه نمیدهد این کار را بکنم. همان شرافتی که تو فکر میکنی ندارم. یک رستوران چطور است؟ دانگی هم حساب میکنیم. ناباور که از توند رویش پشیمان شده بود گفت ناراحت نشو. نمیدانم چرا یک لحظه زیاده روی کردم. منظورم چیزی نبود که تو برداشت کردی. یعنی بود. ولی نه. نبود. اصلا میدانی؟ من حرفای زیادی درباره این مسئله دارم که وقتی همدیگر را دیدیم مفصلا خواهم گفت. در همین زمان زنگ شروع کلاس به صدا درآمد مؤمن که دستش را برای دست دادن به طرف ناباور دراز کرده بود گفت بسیار خوب. من الان باید بروم شماره مرا یادداشت کن. منتظر تماست هستم. ناباور در حالی که با او دست میداد با دست دیگرش گوشیش را آماده نوشتن شماره مؤمن کرد و گفت به گتابه نمیسم و مطمئن باش که حتما تماس می گیرم. عنوان هفته اول برهان نزم رستوران خلوتی را انتخاب کرده بودند و مدتی بود غذایشان تمام شده بود. مومن گفت بگو ببینم بلاخره به آنچه در مورد شرافت نبودن شغل معلمی دینی گفتی اعتقاد داری یا نه؟ نابابر بگذار این طور به شغل معلمی نگاه کنی. اینکه کسی تلاش کند تا به دیگران و به خصوص به کودکان حقایق جهان را بازگو کند کار شرافت مندانه هست. کودکان آمادگی زیادی دارند تا هر آنچه از معلم خود می‌شنوند را به عنوان حقیقت محض قبول کنند حال اگر کسی از این فرصت استفاده کند و مطالب غلط و دروغ به آنها یاد بدهد آیا کاری شرافتمندانه کرده است یا نه مؤمن اگر عمدن مطالب دروغ یاد دهد مسلما عمل قبیهی مرتکب شده اما اگر فکر کند مطلبی که می‌گوید حقیقت دارد چه مادری را در نظر بگیر که اگرش دلسوز کودکش می باشد اما در حال انجام عملی جهت درمان فرزندش است که یک طبیب ناشی به او توصیه کرده او هر لحظه صدمه بیشتری به فرزندش وارد می کند اما آیا می شود گفت که عملی غیر شرافتمندانه انجام می دهد؟ آیا نیت پاک و دلسوزی او در اخلاقی و شرافتمندانه بودن یا نبودن عملش به حساب نمیآید؟ من به درستی آنچه میگویم ایمان دارم و دلسوز بچه ها هستم. تو نمیتوانید مرا متهم به انجام کاری غیر شرافت مندانه کنید. حتی اگر آنچه به آنها آموزش میدهم خلاف حقیقت باشد. ناباور که حالا تواضع بیشتری در ژس و حرکاتش دیده میشد گفت درست است. نیت در اخلاقی بودن و یا نبودن کار تأثیر دارد و من از آنچه بیشتر گفتم ازخاهی و عقب نشینی کنم. اما برای من ثابت شده که خدایان ادیان و پیغمبر و دین جز مشتی دروغ و توهم نیستند و نتیجه آموزش دین به کودکان تحت عنوان مجموعی از حقایق محض حاصلی ندارد مگر اینکه بچه ها به سوی باور این مطالب دروغ سوخ پیدا کنند و پس از مدتی اندک خودشان به جانبداری کور از این باورها بپردازند آنها دیگر تا پایان زندگیشان نمی توانند از زیر بار این عقاید خلاص شوند و همواره افکار دینی و احکام دینی در زندگی آنها نقش بازی خواهد کرد و آنها را به سمت و سویی سو خواهد داد که اگر فکری آزاد از این داشتند به آن سمت و سو حرکت نمی کردند مومن. جانبداری کور؟ تو از کجا می دانی که افراد مؤمن جانبداری کور می کنند؟ ناباور چون مؤمنین نه تنها هیچ دلیل عقلی برای ایمانشان ندارند بلکه وقتی دلایل عقلی زیادی را هم که بر ضد وجود خدایشان است برایشان نگویی بدون اینکه بتوانند آنها را رد کنند به ایمانشان میچسبند و رهایش نمی کنند. اگر مسلمان باشند مسلمان میمانند. اگر هندو هم باشند هندو میمانند و اگر بودایی باشند بودایی میمانند. معاملین هر دینی ادعا می کنند که دینشان از نظر عقلی و فلسفی جایگاه محکمی دارد. اما مگر می شود این همه دینهای مختلف که به طور ریشه‌ای از نظر جهانبینی و احکام تفاوتهای فاهیشی دارند، همگی از نظر عقلی درست باشند. ممن من به بقیه دینها کاری ندارم. اینکه چون به احتمال زیاد بقیه دینها غیر عقلانی هستند پس دین اسلام هم اینطور است، منطقی نیست خدای اسلام و دین اسلام جایگاه عقلی محکمی داره. ناباور بیا ادعا را کنار بگذاریم و این جایگاه عقلی را که میگویی آزمایش کنیم فقط ابتدا میخواهم بدانم که آیا فکر میکنی اگر بتوانم به تو نشان دهم دین اسلام اصلا همه ادیان خلاف عقل و منطق هستند حاضر خواهی شد که شغل تعلیم درس دینی را رها کنی مومن، اگر به من ثابت کنی که اسلام و خدا امور غیر عقلی هستند، من شرافتمند نیستم اگر یک روز هم در این شغل بمانم، اما مطمئنم که نمیتوانم. ناباور آیا چون فکر میکنی اینها امور اقلانی هستند مطمئنی نمیتوانم؟ یا چون خودت هم میدانی خیلی متعصبی و تسلیم منطق نخواهی شد مطمئنی نمیتوانم؟ مومن، قرار نیست پیش داوری کنی. شاید هم این تو هستی که خیلی بر عقیدت تعصب داری. به هر حال معلوم خواهد شد. ناباور. بسیار خوب. من ادعا می کنم که می توانم با اصول عقلی مورد توافق هر دو نفرمان ثابت کنم خدای اسلام یا کلا خدای ادیان توحیدی یا بهتر بگویم خدایی که خیر مطرم. قادر مطلق و دانای مطلق باشد وجود ندارد از تو هم میخواهم نخست ثابت کنی خدای دین اسلام یا همان خدایی که وسویش را میکنی وجود دارد سپس ثابت کنی این خدا باید پیامبری را فرستاده باشد آنگاه ثابت کنی محمد بن عبدالله پیامبر اوست و هر آنچه گفته است گفته ها و دستورات همان خداست در این صورت است که من قبول میکنم ادامه‌ی کار تو در این شغل پس از این مباحثه شرافتمندانه است. ممن ببینم مگر معلم علوم فرزند تو تمام چیزهایی را که در درس علوم است ثابت کرده که حالا من باید همه آنچه را در درس دینی هست ثابت کنم. ناباور گوش کنم راه در علوم تجربی، تجربه و مشاهده است. مشاهده ای که توسط هر شخصی میتواند صورت گیرد. اگر به کتب علوم مدارس نگاه کنید میبینی که از ابتدا برای تمام مفاهیم اولیه همچون نور، سایه، باد، فشار هوا، گرما، نیرو، بار الکتریکی، حرکت، سرعت مثالهایی از موارد مشاهده شده توسط دانش آموزان آورده میشود و نشان داده میشود که اساس هر قضاوتی در مورد مشاهدات علمی خود افراد مشاهده کننده هستند. و از این نظر کسی نسبت به دیگری عرجهیت ندارد و هر آنچه در مشاهدات علمی توسط ما درک شود از ما یک مشاهده کننده و صاحب نظری هم عرض دیگران می سازد. هیچ مرجع مقدسی در علوم تجربی وجود ندارد که حرف آخر را بزند در هر بحثی هم که بین دانشمندان این عرض درگیرد آنچه حرف آخر را می زند، آزمایش و مشاهده است هیچ ای ارزش ایمان داشتن ندارد اگر کسی بگوید که به نظریهای ایمان دارد و با هیچ مشاهده و محاسبه‌ای نخواهد پذیرفت که آن نظریه غلط است به او گفته خواهد شد که اصلا با معرفت شناسی علوم تجربی آشنا نیست آن چیزی که در علوم تجربی موجب ایجاد حس معرفت و شناخت می‌شود بیرون آمدن از بوته آزمایش است و نظریه‌ای که آزمایش‌های پذیری خود را با موفقیت پشت سر نگذاشته باشد، همچنان مورد تردید است. به عبارتی، کلمه ایمان در علوم تجربی جایگاه چندانی ندارد. هیچ دانشمندی به هیچ نظریه علمی ایمان ناپذیر ندارد و همواره آماده است که نظریه علمی بهتر و کارآمدتری را جایگزین قبلی نماید. اگرچه دانشمندان بر روی یافته‌ها و قوانین کشف شده علمی که بر اثر تکرار آزمایش‌های زیاد به دست آمدهاند حساب می‌کنند اما هرگز آن ایمانی را که یک متدین به گزاره‌های آزموده نشدهی دینش دارد به گزاره‌های علمی ندارند معلم علوم آن چیزی که تاکنون کشف و تجربه شده است را به بچه‌ها می‌گوید و اگر فردا چیزهای دیگری تجربه شود و نظریه های جدیدی ارائه گردد، آماده است آنها را به بچه ها یاد بدهد. او روش رسیدن به یافته های علمی را به بچه ها میگوید و نیز به بچه ها میگوید که ایمان و پذیرش مطلق یافته ها و نظریه های علمی جایی در معرفت شناسی تجربی ندارد و هر کس مجاز است خودش به تنهایی هر گزاره علمی را به بوته تجربه بگذارد و به یافته های خودش و دیگران شک کند. علوم تجربی علومی پویا و در حال رشد و تغییرند و ایمان خلل نپذیر در علوم تجربی عبارتی است. معلم علوم تجربی به دانش آموزان نمی گوید که باید به چه چیزی ایمان داشته باشند. برکه میگوید در حال حاضر دانشمندان علوم تجربی به چه نتایجی رسیدن و از کدام قوانین کشف شده برای ساخت چه دستگاهها و اختراعاتی استفاده کرده اند آنها همچنین یادآوری میکنند که این راه همچنان ادامه دارد و پایان نیافته است. به هر حال تو گفتی که به آنچه در دین اسلام آمده و به آنچه به بچه ها می میگویی ایمان داری. حتی نشان بده چرا ایمان داری؟ چرا تردید نداری؟ و چرا از بچه ها میخواهی به همین ها ایمان داشته باشند؟ لطفاً با اثبات وجود خدا شروع کن. مومن همانطور که معلم علوم نمیخواهد که کورکورانه به گفته هایش ایمان داشته باشند من هم از بچه ها نمیخواهم که کورکورانه به گفته هایم ایمان داشته باشند. ابزار آزمایش در دین عقل است. آنها خودشان میتوانند با عقل و منطق فکر کنند و بفهمند که آنچه من میگویم حقیقت است و سپس همچون من به این حقایق ایمان بیاورند. ناباور ببین رفیق تو خودت میدانی که بچه ها در سنی نیستند که خودشان به خوبی من و تو فکر کنند. آنها هرچرا که تو به عنوان حقیقت به آنها بگویی میپذیرند. چون تو در کسوت یک معلم تایید شده توسط دستگاه مؤزم آموزش و پرورش کشورشان این حرفها را به آنها میزنی. تو به آنها نمیگویی که شخصی به نام محمد چهارده قرن قبل ادعا کرد که با خدا در ارتباط است و ادعا کرد که حرفایی که میزند همه از طرف خداست و ادعایی به او ایمان آوردند و ادعایی هم او را نپذیرفتند. پس شما هم اگر خواستید حرفهایش را قبول کنید و اگر نخواستید قبول نکنید. تو نمیگویی که اشخاص دیگری هم بودند که از این قبیل کرده کردند و بعضی به آنها ایمان اند و بعضی نه. پس شما هم بروید هر دینی را که خواستید مطالعه کنید. اگر صلاح دیدید بپذیرید و اگر صلاح ندیدید نپذیرید. تو نمیگویی که مؤمنین یک دین داستانهای معجزات دین خودشان را به راحتی باور می کنند ولی به داستانهای معجزات ادیان دیگر با تردید نگاه می کنند و یا اصلا آنها را قبول ندارند. تو نمیگویی که بعضی قرآن را معجزه می دانند و نیز افراد بسیاری هم هستند که ایرادهای زیادی به این کتاب گرفتند و آن را معجزه نمی دانند. تو نمیگویی که بسیاری از متفکرین و فلاسفه اصلا به وجود خدا بودین اعتقاد ندارند چرا که اصول ادیان را غیر اقلانی دانند و یا بعضی گفته های ادیان را کاملا مخالف علوم تجربی دیدهاند و یا بسیاری از احکام ادیان را غیر اخلاقی و غیر انسانی می میدانند خلاصه اینکه تو داستان دینت را با بیطرفی نمی گویی و آن را همانطور که به وجود آمده و رشد کرده به شکل داستان تاریخی برایشان تعریف نمی کن. تو حرف های مخالفین دینت را نمی تا دانش آموزان خودشان بفهمند که می شود این دین را به عنوان یک امر غیر مقدس و قابل نقد و ارزیابی بررسی کنند و آزادانه نقاط قوت و ضعف آن را بسنجند و با عقل خودشان در تصمیم بگیرند. تو جملاتت را تحت عنوان حقایقی مسلم که جای هیچ تردیدی ندارد مطرح می‌کنی تو میگویید که خدای تعالی وجود دارد و حضرت محمد صلی الله و علیه و آله را به پیامبری برگزید و به او وحی کرد و دستوراتش را از طریق حضرت محمد به مردم ابلاغ کرد تا رستگار شوند و به بهشت بروند و یا به جهنم نروند. تو میگویی که کتاب قرآن یک معجزه آشکار است و هیچ ایرادی نمیتوان آن گرفت. تو چنان اینها را به بچه ها میگویی که آنها میپندارند همه اینها قبلا توسط تمامی اغلا بررسی شده و هیچ تردیدی در این گفته ها وجود ندارد و هر آن کس که تردید کند و یا ایرادی بگیرد یا احمق است یا دشمن حقیقت است و یا لجباز است تو پیش از آنکه کودکان و نوجوانان بخواهند به ارزیابی هایت بپردازند با عناوین و عباراتی چون تعالی حضرت علیه السلام صل الله علیه و آله علی و از این قبیل شخصیت‌های دینی و خدای دین را چنان محترم و مقدس جلوه می‌دهید که دیگر ذهن دانش آموزان جرعت ورود به وادی نقد و انتقاد و اندیشه آزاد را پیدا می کند تا پیش از اینکه کودکان به بررسی اقلانی مبانی دینت بپردازند مغمه از عشق و ترس را در ذهنشان می نشانی آنچنان که دیگر آمادگی و توان روانی هر نقد و ارزیابی منطقی و آزاد اندیشانه را از دست می دهند مومن لبخندی زد و گفت تو هم در همین سیستم درس خانده ای خدا و پیغمبر و قرآن برای تو هم مقدس جلوه داده شدند پس چرا تو به نقد و انتقاد روی آوردی چرا تو توان روانی این کار رو از دست ندادی شاید دیگران هم همچون تو نقد و انتقاد کردند اما همان نتیجه تو را نگرفتند بلکه فهمیدن که دین اسلام کاملا حق و درست است. ناباور اگر همه بچه های دنیا پس از نقد و انتقادی که تو از آن سخن نگویی به دین اسلام و مخصوصاً مذهب شیعه روی می می‌گفتم که حق با توست و هر کسی در یک دوره از زندگی بالاخره از زیر بار تقدسی که معلمها و خانواده برایش نسبت به دینش ایجاد کرده فرار کرده و آزادانه به بررسی حقانیت آن پرداخته و فهمیده که باید دین خود را رها کند و به مذهب شیعه بگرود. اما آنچه دیده می شود این است که یک شیعه تا آخر یک شیعه می و یک سنی هندو، بودایی و شینتو تا آخر عمرش به دین و مذهب خود می مانند. همه این ادیان و مذابی که نمی از بررسی های اقلانی و منطقی سربلند بیرون بیایند. حد اکثر یکی از آنها مذهب و دین کاملا حق و درست است. پس حد اکثر یکی از آنها میتواند کاملا کاملاً اقلانی و منطقی باشد. چطور حاصل هر بررسی معقول و منطقی همان دینی میشود شود که شخص در آن به دنیا آمده؟ نوع آموزش دین و ایجاد حالی تقدس به دور آن توان نقد و بررسی اقلانی آن را از همان کودکی میگیرد. هرچند بعضی هم مثل من وجود داشته باشند که بتوانند از این چنبره تقدس بگریزند. زند. مومن. من به شیوه آموزش بقیه ادیان و نتیجه آن بر روی ذهن پیروانشان کاری ندارم. اجازه بده به جای بحث های هاشیهی، سراغ اثبات وجود خدا. تا زمانی که من قدم به قدم عقلانی بودن اصول دین اسلام را ثابت نکنم، نمی توانم عقیده یه تو را عوض کنم. نا موافقم. بهتر از همه چیز را از طریق بحث فلسفی یعنی بحثی بر پایه منطق و اندیشه آزاد روشن کنم. جرامیان همین جا فاید آوایی اول از کتاب برهان علیت پایان پیدا میکنه. تا درودی دیگر بدرود